فرنفش رزای عزیز تو این سالهایی که تو نوید انماس بودی فراز و نشیب زیاد داشتیم با هم دیگه ولی در نهایت این بوده که تو همیشه زحمتکش کش مجموعه بودی و تو فروش در اقتدا و بعدا تو توی فارهای دیگه به ما خیلی کمک کردی از زحماتی که برای فروش بوسی کشیدی تا زحمات نفرات قبلی که رفتن و تو جاشونو پر کردی و قطعا یکی از مدیران آینده مجموع نوی نلماس تو خواهی بود امیدوارم که در ادامه مسیر هم همینجوری موفق و سینه سترب داشته باشی تا ما بتونیم از کنارت بودن لذت ببریم و این همکاری سالهای سال ادامه داشته باشید